689. شیخ ابراهیم که سفره را آماده کرده بود آنها را صدا زد و دور هم به خوردن شام مشغول شدند پس از آنکه شام به پایان آمد نورالدین کنار پنجره رفت و باغ را که در زیر نور محتاب چون روز روشن شده بود نگاه میکرد و ماهرو را صدا زد و هر دو سرگرم تماشای منظره زیبای باغ و درختان نخل و نارنج و سرو و بید شدند شیخ ابراهیم هم در این فاصله سفره غذا را جمع کرد. هنگامی که شیخ ابراهیم دوباره به بی بیهمانان خود پیوست، نورالدین از او پرسید آیا شراب ناب در دستگاه تو یافت می شود؟ شیخ گفت من و شراب من به زیارت خانه خدا رفتم و از آن تاریخ تا کنون لب شراب نزدم و شراب هم در خانه خود نگه نمی دارم. گفت در این شب مهدابی و در این باغ یک بود شراب ناب لذت ما را به اوج می رساند. این را گفت و چهار سکه طلا در دست شیخ ابراهیم گذاشت شیخ با دیدن سکه ها نم شد و گفت می و شراب ناب از بیرون تهیه می و برمیگردم نورالدین گفت راستی در ته باق اولاقی می چارید. تو می با اولاق سریتر خود را به دکان شراب فروشی برسانی شیخ ابراهیم از عمارت بیرون رفت و سوار بر شد و با سرعت دنبال شراب رفت و بعد از مدتی بازگشت و شرابها را به داخل عمارت آورد و دو جام زرین هم در کنار آن نهاد نورالدین و ماهروی ایرانی بهنوشیدن پرداختند و به سلامتی یکدیگر و سلامتی شیخ ابراهیم می نوشیدند و به او هم اصرار بنوشیدن میکردند ولی او می گفت به حج رفته و دیگر نباید شراب بنوشد شیخ ابراهیم از در امارت بیرون رفت و به زودی بازگشت و سینی پر از میوه های تازه و خوشمزه جلوی آنها گذاشت و پرسید آیا چیز دیگری هم لازم دارید؟ آنها تشکر کردند و به شیخ ابراهیم اتراب کردند کنار آنها بنشیند ولی او آنها را ترک گفت و از امارت بیرون رفت. نورالدین و ماهروی ایرانی هر دو صدایی بسیار گرم و دلنشینی داشتند و شروع به آواز خواندن کردند. مخصوصا صدای ماهرو که بسیار مطبوع بود شیخ ابراهیم که هنوز از پله های امارت بیرون نرفته بود با شنیدن صدای افتون ماهرو در جای خود میخکوب شد و مظهور آواز او گشت نورالدین شیخ ابراهیم را صدا زد که بیا با ما باش و حضور خودش را از ما دریق نکن شیخ ابراهیم هم خیلی مایل بود با آنها باشد بنابراین به آن دو پیوست و در گوشه نشست نورالدین زمن تشکر بسیار از مهمانی های شیخ به او گفت بیا نزدیک و در کنار ما بنشین شیخ ابراهیم از جای خود برخاست و در کنار بانوی زیبا قرار گرفت نورالدین جا پر از شراب را برداشت و نوشید و به شیخ گفت تو هم به سلامتی ما جا می نوشه جان کن و باقصار با این ترتیب خوشنودی ما بیشتر شود شیخ خودداری میکرد در این وقت بانوی زیبا بسمتی از یک دانی سیب را با و برید و به دهان شیخ گذاشت و از او خواست تا جامی به سلامتی او بنوشد. شیخ تشکر کرد و سیب را گرفت و بوسید و بر دهان گذاشت. نوردی خود را به خواب زد و گوشه دراز کشید. در این هنگام بالوی ماخرو به آرامی آهستگی با پیرمرد به گفته پرداخت و جام شرابی به دست او داد و گفت به سلامتی من بنوش. پیر هم جام را گرفت و به سلامتی او نوشید. آنگاه ماهروی ایرانی به او گفت این جوان با دوست جام شراب سوفت و خوابالود می شود. من دوست دارم با کسی شراب بنوشم که با من همراهی کند. پیر شراب را دوست داشت ولی در برابر دیگران از نوشیدن خودداری می کرد. اما گاه و بیگاه به تنهایی به ای که در همان نزدیکی ها بود سری میزد و شرابی می نوشید. امشب هم با اصرار ماهروی ایرانی چهار بار جام شراب خود را تا آخرین قطره نوشید در این هنگام نورالدین از خواب دروغه خود بر اثر صدای خنده بلند پیرمرد برخاست و گفت شیخ بالاخره تو را به دام انداختم و شراب نوشیدی از حالا به بعد باید از دست من شراب بنوشید شیخ که غافلگیر شده بود از شرمندگی سرخ شد و در حالی که آخرین قطعه شراب جام خود را می نوشید پاسخ داد ای جوان زیبایی و دروبایی این بانو مقاومت هر مردی را در هم نیشکند اگر من هم مرتکب گناهی شده باشم جوابگوی آن این بانوی زیباست بانوی زیبا گفت جامهای خود را پر کنیم و بنوشیم آنگاه یکی برای خود و یکی هم برای نورالدین ریخ ولی برای پیرمرد جامی آماده نکرد پیرمرد جام خالی را برداشت و به سوی بانوی زیبا برد و گفت. آیا برای من هم مرحمت میفرمایید با این سخن پیرمرد نزدیک بر نورالدین و بانوی زیبا از فرط خنده از حال بروند نورالدین جام پیرمرد را از شراب لبیز کرد و هست نفر جام خود را برداشتند و یک نوشیدند و به خنده و گفته و شادی ادامه دادند رفت رفته شب از نمی می و ماه در وسط آسمان رسیده و گرد نقه می پاشید ماه ایرانی پیرمرد را صدا زد و گفت، فقط یک شمدان روشن است، ممکن است خواهش کنم سایر شمدان ها را هم روشن کنید، پیرمرد که کاملا سرخوش بود پاسخ داد، البته، ولی بهتر از شما خودتان آنها را روشن کنید، ولی دقت کنید بیش از پنج یا شش شمدان را روشن نکنید، زیرا نور آنها بسیار است و از فاصله دور میتوان قصد را غرقه در روشنایی دید، منوی زیبا، بدون توجه به سخنان پیر مرد همین شمدان ها رو روشن کرد و روشنایی فوقلاده امارت نظر هر بیننده ای را از مسافت دور به سوی خود جرد می کرد و تصور می در قصر جشنی برپاس خلیفه هارون رشید که هنوز در تالار قصر خود راه می رفت و نخابیده بود از ایوان قصر متوجه روشنایی امارت نگارستان شد و حیرت کرد که چه کسی اقدام به این کار کرده از وزیر خود جعفر پرسید در امارت نگارستان چه خبر است جعفر مقابل پنجره آمد و مشاهده کرد که امارت نگارستان غرق در نور است پیش خود بسیار تعجب کرد و هرچه خواست از این معما سر در بیاورد نتوانست به هر حال چون ناچار بود پاسخی قانع کننده به خلیفه بدهد مطلبی به خاطرش رسید و به خلیفه چنین گفت در حدود پنج شش روز پیش شیخ ابراهیم به من گفت قصد دارد خدمتکاران مسجد محله را برای انجام مراسمی جهت دعاگوی حضرت خلیفه دعوت کند. من به او گفتم چه کمکی از من ساخته است. او پاسخ داد اگر ممکن است این مراسم در امارت نگارستان به آید من هم به او اجازه دادم. تقفا می شیخ ابراهیم در امارت نگارستان مشغول انجام مراسم نیایش است، که تمام چراغ‌ها را روشن کرده است در پاسخ این توضیحات خلیفه با صدای خشمگین به جعفر وزیر خود گفت تو مرتکب اشتباه شده ای اولاً که به شیخ ابراهیم اجازه دادی مراسم در امارت نگارستان اجرا شود دومان که اجازه ای را که به او ای به آگاهی من نرسانده ای که قصد نهایی شیخ ابراهیم را از داگویی ندانسته ای. در حالی که من فورا متوجه شدم. او این مراسم را برای به دست آوردن پول و جبران کمبود در خود برپا می کند. ولی هزینه استفاده از روشنایی چهل ها و کرایه محل جهت اجتماع را تو باید از جیب خودت بپردازید. جعفر نخست وزیر خوشحال شد که قضیه به این کیفیت خاتمه پذیرفت و با دادن چند سکه طلا خشم خلیفه پایان می رسد. بعد از آن خلیفه رو به جعفر کرد و گفت تو باید برای اشتباهات خود مجازات شوی اما مجازات تو چندان سنگین نخواهد بود فقط برو و همراه رئیس نگهبانان قصر با لباس مبدل نزد من بیایید تا 함께 به امارت نگارستان برویم و ببینیم در آنجا چه میگذرد. بعد از مدتی کوتاه همه آماده شدند و همراه خلیفه که او هم با لباس مبدل بود به سوی امارت نگارستم راهی شدند جعفر نخست وزیر که داستان شیخ ابراهیم و خدمتکاران مسجد را صرفاً برای پاسخگویی به پرسش خلیفه ساخته بود و سخت نگران بود که در امارت نگارستان چه کسانی گرد آمدند خلیفه و جعفر و رئیس نگهبانان قصر خیابان‌های بغداد را طی کردند تا به در باغ رسیدند که همچنان گشوده بود خلیفه از گشوده بودن در باغ ناراحت شد و گفت جعفر فکر می‌کنی در این موقعی شب چرا در باغ را باز گذاشتند این شیخ ابراهیم هر شب در را باز می‌گذارد البته شیخ ابراهیم پس از خریدن شراب با شتاب زدگی وارد باغ شده و فراموش کرده بود در باغ را ببندد جفر پاسخ داد حتّی شیخ ابراهیم برای اجتماع در امارت عجله داشته و فراموش کرده در باغ را ببندد خلیفه وارد باغ شد و هنگامی که کنار امارت نگارستان رسید تصمیم گرفت اول بداند چه کسانی داخل امارت هستند و به چه خاری مشغولند در ورودی نیمه باز بود خلیفه از روی در نگاه کرد و منظرهی بسیار حیرت انگیزی دید که تصور آن را هم نمی‌کرد بانوی بسیار زیبایی را دید که در کنار جوان خوشتیپ و خوشندامی دور میز نشسته و شیخ ابراهیم را هم دید که تازه جام شرابی را به دست گرفته و در کنار آن بانوی جوان زیبا نشسته و خطا به او میگوید باده خوران واقعی هرگز بدون ترانه و زمزمه آواز باده نمی نوشند و اگر شما مایل به شنیدن باشید من یکی از بهترین ترانه هایم را برایتان میخوانم. شیخ ابراهیم شروع به آواز خواندن کرد خلیفه تا آن موقع معتقد بود که شیخ ابراهیم مردی مقدس و مذهبی است و هرگز لب به جام شراب نیالوده است و حالا میدید که تا خنون به ظاهر او قضاوت کرده است خلیفه به آرامی و بدون کمترین صدایی به سوی جعفر نخست وزیر که روی پرلکان دوم امارت ایستاده بود رفت و به او گفت برو از لای در نگاه کن و ببین آن دو نفری که دور میز نشسته اند از خدمتکاران مسجد هستند همان خدمتکارانی که تو برای من شهر قرار است با شیخ ابراهیم برای دعا من در این امارت جمع شوند و اصلا داشتی من هم باور کنم جعفر جلو رفت و از در آنها را دید آن هم در آن شرایط یعنی در حال بادنوشی و ترانه خانی. آه از نهاد جفر برآمد و فهمید که روزگارش تباه شده است از ترس بخود میلرزید و قدرت سخن گفتن نداشت خلیفه گفت اینها چه کسانی هستند که بدون اجازه من در امارت و در باغ من به این راحتی و بیخیالی با این شیخ به ظاهر مقدس مشغول مینوشیدن و خوشگذرانی هستند. شیخ چگونه آنها را راه داده و خودش هم مشغول همراهی و تفریح با آنهاست آنگاه خلیفه به خود گفت گرچه من زن و مردی زیباتر و زوجی مناسبتر از این دو ندیدهام بنابراین قبل از که خشم خود را به آنها نشان دهم بهتر است آنها را بهتر بشناسم و بدانم آنها کی هستند و چرا این امارت نگارستان را برای باد نوشی انتخاب کردند خلیفه دوباره تا پشت در جلو رفت و از آنجا آنها را با دقت نگاه کرد. جفر هم پشت سر خلیفه به تماشای ایستاد و به آنها خیره شد. آنها به وضوح هرچهرا شیخ ابراهیم به آن بانوی زیبا میگفت، می شنیدند. در این وقت، شیخ از آن بانوی زیبا پرسید: بانوی زیبای من، آیا چیز دیگری لازم دارید تا لذت امشب را به اوج برساند؟ ماهروی ایرانی پاسخ داد: فقط جای یک عود خالی است و اگر می توانستی آن را برایم بیاوری، دیگر وزن ما از هر جهت کامل می شد. شیخ ابراهیم پرسید مگر شما به نواختن اود آشنایی دارید بانوی زیبا پاسخ داد آن را به من بده تا بفهمی که نواختن اود را آشنا هستم یا نه شیخ ابراهیم فوراً گنجهای را در همان نزدیکی گشود و یک اود از آنجا بیرون آورد و تسلیم ماهروی ایرانی کرد ماهرو هم اود را گرفت و آن را کوک کرد و شروع به نواختن نمود و در زن با آواز لطیف خود با آهنگ عود همراهی میکرد خلیفه به جفر گفت واقعا در نواختن عود مهارت دارد و به مراتب استادانهتر از یعقوب موسلی که سرآمد نوازندگان جهان است عود مینوازد و آوازش هم لطیف و پرور است و شنونده را مدهوش میسازد دلم میخواست که در حضور خودم به نواختن و خواندن مشغول میشد من در تمام عمر صدایی به این لطافت و شورانگیزی نشنیدم، این ساز آواز مرا اسوم کرده است ما ترتیبی دهی که در حضور ما خود ما هننمای خود را خشنود سازد من الان به داخل امارت میروم جعفر گفت یا امیرالمومنین اگر شما ناگهان وارد تالار شوید شیخ ابراهیم با دیدن شما از شدت ترس آل توهی خواهد کرد خلیفه گفت راست میگویی مایه لیستم خدمتگذاری را که در تمام عمرش به من خدمت کرده است از دست دهم و با مرگ او شوم اما فکری به خاطرم رسید تو و رئیس نگهبانان همینجا جا تا من دوباره نزد شماها برگردم نظر به مجاورت رود پهناور دجله با این باغ خلیفه نهری از دجله به این باغ کشیده بود که در آن نهر بزرگ بهترین نوع می میتوانست در دسترس قرار گیرد خلیفه به سراغ رودخانه رفت اتفاقا در کنار نهر بزرگ مرد ماهیگیری را دید که میخواهد ماهی شکار کند مرد ماهیگیر را دید که میخواهد ماهی شخار کند. ماهیگیر خلیفه را فورا شناخت و به پاهای او افتاد و هزاران معذرت خواست که بی اجازه وارد باقع خلیفه شده و ماهیگیری میکند. خلیفه او را از روی پای خود بلند کرد و گفت: دام خود را در نهر بگستران. ماهیگیر امر خلیفه را اطاعت کرد و پنج شش ماهی بزرگ از درون دام بیرون آورد. خلیفه دو عدد از بزرگترین آنها را گرفت. و با ریسمانی سرهای دو ماهی را به یکدیگر بست. آنگاه لباسش را با لباس ماهیگیر عوض کرد و حتی چکمه های ماهیگیری ماهیگیر را هم ما کفش های خود مبادله کرد و ماهی ها را برداشت و به نزد جعفر نحس وزیر مراجعه کرد. جعفر که خلیفه را در آن لباس و چکمه نشناخته بود، پرسید چه میخواهی و اینجا چه کار داری؟ برو دنبال کار خودت، نیازی هم به ماهی نداریم. خلیفه خندید آن وقت جعفر متوجه شد که با خلیفه سخن میگوید بسیار شرمنده شد و عذرخواهی کرد و گفت من شما را نشناختم خلیفه گفت حالا میتوانم به درون تالار بروم شما هر دو همینجا بیستید آنگاه خلیفه ضربی بر در امارت نواخ نورالدین بلافاصله صدای ضربه را شنید و به شیخ ابراهیم گفت ببین کیست که با ورود نابهنگام خود مزاحم بزم ما می شود خلیفه در را باز کرد و داخل شد و گفت شیخ ابراهیم من کریم ماهیگیر هستم و چون فهمیدم شما میهمان دارید برایتان ماهی تازه آوردم ماهیها را هماكنون سید ام و خیلی هم بزرگ هستند نورالدین و ماهروی ایرانی از دیدن ماهیها بسیار شاد شدند و به شیخ ابراهیم گفتند بگذار ماهیگیر آنها را نزدیکتر بیاورد و آنها را ببینیم شیخ ابراهیم که کاملا مسد بود و نمی توانست به درستی کلمات را عدا کند و سعی او در خوشنون ترساختر ماهروی ایرانی و نورالدین از خود بود و خلیفه را هم به جای ماهیگیر گرفته بود ما کلمات جویده به خلیفه گفت بیا جلوتر ای دوزد شب گرد تا ببینم چه سید کرده ای خلیفه جلو رفت و مانند یک ماهیگیر عدای احترام کرد و هر دو ماهی را به او ارائه داد ماهروی ایرانی و نورالدین گفتند ماهی‌های خوبی هستند و اگر یکی از آنها را برای ما آماده کنی خیلی از شما ممنون میشویم. خلیفه از تالار بیرون آمد و به اتفاق جعفر و رئیس نگهبانان به آشپزخانه کوچک شیخ ابراهیم رفتند و حرفه مشغول به کار شدند و در ظرف مدت بسیار کوتاهی ماهی را پختند و آماده کردند و به تالار آوردند و جلوی آنها گذاشتند و در کنار آن نیز چند لیموترش تازه اضافه کردند. نورالدین از ماهیگیر سپاسگزاری کرد و کیسه‌ای را که سی عدد سکه ی طلا در آن بود به ماهیگی داد و گفت این را از من بپذیر گرچه بسیار ناچیز است اگر در روزگاری که زندگی خوبی داشتم با هم رو برو شده بودیم بیش از اینها تقدیم میکردم ولی می‌گذاشتم به ماهیگیری ادامه دهی و زندگی راحتی برایت می کردم خریفی کسی کیسه را گرفت و از وزن سنگین آن فهمید سکه های طلا آن است و بسیار سپاسگزاری کرد و گفت شما مرد سخاوتمندی هستید ولی قبل از رفتن میخواستم خواهش کنم این بانوی زیبا هم اودی بنوازند و همه را به من سازند نوردین هم درخواست ماهی را تایید کرد و مهروی ایرانی اود به دست گرفت و بعد از آماده کردن آن شروع به نواختن نمود. پنجه های شوری در دلها پدید آورد بعد هم ترانه بسیار دلنشینی خواند. که خلیفه از صدای لطیف و بهشتی او سرمست و از خود بیخود شد. آنگاه خلیفه بی اختیار فریاد زد: عجب صدایی و عجب پنجه‌ای! من در تمام عمرم چنین هنرمندی ندیدم. ام. گفت: معلوم است که شما با ساز و آواز خوب آشنا هستید، و اگر از هنرمندی این بانو خوشتان میآید من او را به شما بخشیدم تا متعلق به شما باشد. آنگاه نورالدین به قصد خروج از امارت از جا برخاست. ماهروی ایرانی که انتظار چنین رفتاری را از نورالدین نداشت چیزی نگفت ولی عشق از چشمانش سرازیر شد و با نگاه خود نورالدین را سرزنش میکرد و به او گفت بنشیند میخواهم آهنگی بنوازم. نورالدین هم به جای خود برگشت و نشست و ماهرو آهنگی دیگری نواخت که با آن گریه کرد بعد نورالدین به ماهی گفت به خاطر این کنیزک سرگذشت شنیدنی دارم که اگر بخواهی تعریف میکنم ماهیگیر گفت بفرمایید گوش می کنم. نوردین سرگذشت پدر خود و خریدن ماهروی ایرانی را برای شاه بسره و بقیه داستان را تا آمدن به بغداد و تا ورود به باغ و تا این لحظه برای ماهیگیر تعریف کرد. وقتی داستان به پایان رسید ماهیگیر پرسید از این شهر به کجا خواهید رفت. نوردین پاسخ داد هر جا که خدا بخواهد. ماهیگیر گفت شما از اینجا به بسره خواهید رفت. زیرا من نامی به سلطان بسر می و به شما می دهم که به او بدهید و او از شما پذیرایی و مراقبت خواهد کرد. نوردین گفت تو ماهیگیری بیش نیستی. چگونه انتظار داری سلطان بنوشته ای تو ترتیب اثری بدهد؟ ماهیگیر گفت ما هر دو شاگرد یک استاد بوده ایم و با یک از دوست سمیمی هستیم. منتها او شاه شد و من ماهیگیر سمیدش دست پروردگار است ولی با این اختلاف مقام، رفاقت ما همچنان به جای خود باقی است. تو نگران نباش نامه مرا به او بده نتیجه خواهید دید. نورالدین تسلیم شد و خلیفه نامی به این مضمون نوشت. هارون رشید فرزند مهدی این نامه را به محمد زینبی اموزاده خود می نویسد. بعد از به مهدان که حامل این نامه نورالدین فرزند مرحوم خاکان وزیر نامه را به نزد تو تسلیم کرد پس از خواندن نامه تاج شاهی را بر سر او میگذاری و او به جای تو بر تخمین درنگ درنج جایی نیست. خدا حافظ نامه را تا کرد و در آن را مه و به دست نورالدین داد و گفت هم کشتی در همین لحظه عزمین بسره است این نامه را بردار و برو سوار کشتی شو و در کشتی استراحت کن نورالدین فورا از جا برخاست و با پول مختصری که در جیب داشت به افتاد ماهروی ایرانی هم شروع به گریستن کرد شیخ که در تمام این مدت سکوت اختیار کرده بود، به صدا درآمد و به ماهیگیر گفت: ببین کریم، تو دو عدد ماهی برای ما آورده ای که قیمت آن 20 درهم است، اما تو الان یک کنیز زیبا و یک کیسه پول در اختیار داری. آیا میخواهی به تنهایی از هر دو استفاده کنی؟ من پیشنهاد میکنم کنیزت را با یک دیگر نصف بنز شریک شویم و در مورد کیسه اول ببین در آن سکه طلا یا نقره. اگر نوغه از تو یک دنه بردار و بقیه مال من، اما اگر طلا بود، همهاش متعلق به من باشد و من به جای تعدادی از پولهای مسی داخل جیب خود را به تو می دهم. خلیفه قبل از داخل شدن به تالار امارت نگارستان، به جفر نخص دستور داده بود که به قصد برود و لباس و کفشهای او را با تهار غلام به آنجا آورد و در پشت پنجره ی تالار در انتظار باشند تا با اشاره نزد او بیایند. خلیفه به شیخ ابراهیم گفت هرچه در کیسه باشد چه طلا و چه نقره آن را با یکدیگر نصف میکنیم اما کنیزک از آن من خواهد بود و تا حقی نسبت به او نداری شیخ از سخن خشمگین شد و یکی از های چینی را از روی میز برداشت و به سوی خلیفه پرتاب کرد که خلیفه به موقع خود را عقب کشید و بشقاب به دیوار خورد و چندین تکه شد شیخ ابراهیم که بیشتر از شده بود شمدان روی میز را برداشت و به دنبال چوب دستی برای کودک زدن خلیفه به گوشه ای رفت. در این لحظه خلیفه زربوتی به شیشه زد و جعفر با لباس غلامان وارد شدند و خلیفه لباس ماهیگیر را از تن بیرون کرد و مشغول پوشیدن شد و غلامان به او کمک کردند و سپس روی صندلی نشست. وقتی شیخ ابراهیم با چوب دستی مراجعت کرد، خلیفه را روی صندلی دید که جعفر و رئیس نگهبانان هم در دو سمت او ایستاده‌اند. شیخ ابراهیم از حیرت در جای خود خشک شد و خیال کرد خواب می‌بیند آنگاه خلیفه از حیرت شیخ ابراهیم خندش گرفت و شیخ فهمید آنچه می‌بیند حقیقت است خلیفه گفت شیخ می‌خواستی با چوب کسی را کتک بزنی شیخ بلافاصله روی پاهای خلیفه افتاد و درخواست کرد جسارت او را ببخشد زیرا نمی‌دانست که ماهیگیر همان خلیفه است خلیفه شیخ را از روی زمین بلند کرد و گفت تو را بخشیدم سپس خلیفه به ماهروی ایرانی که در اندوه عمیق فرو رفته بود پرداخت و گفت شما دنبال من بیایید من سخاوتی بالاتر از سخاوت نورالدین در عمر خود ندیدم من شما را احترام میگذارم و در نامه هم نوشتم که نورالدین پادشاه بسره است و شما هم ملکی او هستید برای شما تالاری در قصه خود تصریب خواهم داد که مطابق شرد شما باشد. و در آنجا استراحت کنید تا به موقع خود با موکب مخصوص عازم شهر بسره شوید بانوی زیبای جوان خشنود شد و به آرزوی خود که ترقی نورالدین بود نائل گردید و خلیفه هم او را زیر مراقبت ملکی خود بانور زبیده قرار داد و زبید هم که متوجه شد نورالدین مورد محبت خلیفه است کمال توجه را به او نشان داد نورالدین پس از رسیدن به بسره با نامه خلیفه وارد دربار سلطان گردید نامه را به سلطان تسلیم کرد و سلطان نامه را خواند و رنگ از صورتش پرید و نامه را سه بوسید و بر روی چشم گذاشت و تصمیم داشت به همین ترتیب هم سلطنت را به نورالدین واگذار کند و امر خلیفه را به موقع اجرا گذارد. اما وزیر بدخواه که نورالدین را در آنجا دید بسیار حیرت کرد و علت را از سلطان جویا شد. سلطان هم نامه خلیفه را به او نشان داد. وزیر به بهانه اینکه نامه را درست نخوانده است آن را از سلطان گرفت و بدون آنکه کسی متوجه شود عنوان از خلیفه به سلطان بسته را پاره کرد و آن را در دهان گذاشت و بلعید آنگاه از سلطان پرسید حال چه تصمیمی دارید سلطان گفت باید امر خلیفه انجام شود و تاج سلطنت را به نورالدین واگذار کنم وزیر بدنهاد خندید و گفت این نامه عنوان از خلیفه هارون رشید را ندارد و چنین نامی قابل تحصیب اصل نیست و شما از این جهت نگران نباشید. زیرا نامه امزا خلیفه را هم ندارد. بنابراین این کار را به من واگذار کنید. سلطان فری به او را خورد و نوردین را به دست او سپرد. او نورالدین را به خانه خود برد و دستور داد او را مورد شکنجه قرار دهند و شش روز تمام او را در دخمی زندانی کرد. بعد از چند روز وزیر نزد سلطان رفت. سلطان نازان از او پرسید مگر نورالدین را نخشتی؟ وزیر پاسخ داد چون او در حضور مردم نسبت به من بی‌احترامی کرده است از شما میخواهم دستور دهید جارچیان در سراسر شهر جار بزنند که نورالدین ولت بی‌احترامی به وزیر در میدان شهر به دار مجازات آویخته خواهد شد سلطان هم این پیشنهاد را پذیرفت و این خبر را در شهر منتشر ساختند مردم از این خبر ناخوش شدند زیرا فورا خاطره خوبی های وزیر نیکوسیرت در ذهنشان بیدار شد که هم او و هم پسرش نورالدین را صمیمانه دوست داشتند نورالدین را از آن دخمه دست و پابسته به میدان شهر آوردند و وقتی فهمید وزیر میخواهد او را به دار بیاویزد به او گفت اگر خونی به ناحق ریخته شود عواقب بد آن گریبانگیر ظالم خواهد شد مردم جمع شده بودند و علیه وزیر ستمخا شعار میدادند فریاد میکشیدند و اگر نیروی نگهبانان و سپاهیان نبود مردم وزیر بدنهاد را سنگسار میکردند سلطان و وزیر بدندیش هم در میدان شهر به تماشای مراسم دار زدن نورالدین نشسته بودند نورالدین را به دست درخین سپردند و او هم نورالدین را در زیر چوبهٔ دار آورد و به نورالدین گفت مرا ببخشید که شما را به دار میآویزم من غلام وزیر هستم و اکنون سلطان دستور اجرای حکم را می دهد اگر حرفی دارید بیان کنید نورالدین گفت آب می خواهم. وزیر از جایگاه خود فریاد کشید چرا حکم را اجرا نمی سلطان در جایگاه خود نشسته بود و از این حرکت وزیر ناراحت شد برای نورالدین آب آوردند او آب را گرفت و به اطراف خود نظر انداخت و انتظار داشت مردمی که طرفدار او و پدرش بودند به یاری او به پا سلطان به درشوین دستور داد یک لحظه دست نگهدار زیرا در این موقع سلطان متوجه شد که تعدادی بیشماری اسب سوار از خیابان مقابل قصر سلطنتی به سوی میدان شهر میتازند و گرد خاک به هوا برفاسته است کمی دقت کرد دید سپاهیان خلیفه هستند که از بغداد میآیند وزیر که نمیدانست سپاهیان خلیفه در حال حرکت به سوی قصر سلطان هستند با اصرار سلطان تقاضا کرد به علامت دهد تا حکم مرگ نورالدین را اجا کند. سلطان با تندی گفت نه بگذار ببینم این سپاه برای چه منظوری آمده است در همین لحظه جعفر نخست وضع خلیفه را دید که در پیش سپاهیان است میراند حال جعفر و نورالدین را به حال خود میگذاریم و به سراغ خلیفه حارون رشید میرویم بعد از آنکه نورالدین با نام خلیفه به سوی بسر سوار برکشته شد خلیفه به خلیفه‌بخلی فراموش کرد که ماهروی ایرانی را با گروهی ملازمین به عنوان ملکه روانه بسره کند. روزی از روزها که خلیفه از در راههای قصر خود می‌گذشت، از یکی از تالارها صدای آواز دلنشینی به گوشش رسید که پای او سست شد و شنده دقت کرد، متوجه شد خواننده ترانه‌ای می‌خواند که مضمونش شکایت از دوری مشوق بود. خلیفه از رئیس نگهبانان داخلی قصر پرسید: در تالار کیست او پاسخ داد همان کنیز متعلق به آن جوان غریبه که به حکومت بسته اعزام شده است